دوان دوان برگشت و راه بنفشه در را در پیش گرفت. یک نفس تا آنجا دوید. از پای پرچین دور زد و به سوی ساحل دوید و آنقدر آن را رفت و برگشت تا اینکه در ساحل چشم سیاهی رفت و به زمین افتاد. آسمان، دریاچه و نیزار دور سرش چرخیدند. چسبید به زمین. اول هر دو کف دستش را گذاشت و بازوهایش را ستون قرار داد. و سپس آهسته نشست و به پشت خوابید و برای اینکه وارونگی و چرخش آسمان را نبیند چشمایش را بست خورشید پشت پلکایش تابید رنگها جان میگرفتند بیشتر قرمز بودند با نقطه های ریز بعد هنایی میشدند به رنگ آشنا همه جا هنایی شد بوی حنا پیچید بوی نجیب دستهای مهربان آنا و موهایش که هنایی بود بغزش گرفت باد وزید نیزار موج برداشت، صدای حس حس کاکل نیها بلند شد سس، سس که سنا همین نزدیکی هاست، همینجاست باد بوی سنا را به مشامش می رسند بوی سنا، بوی هنا، بوی آنا صدای حزینی از میان نیها برخاست. کسی در نیزار مرسیه می‌خواند و جماعت زیادی او را همراهی میکردند و میگریستند. صدای نوحه و گریه جای حس حسنه ها را گرفته بود. ناگهان اسبی شیه کشید و صدایش در آن میان پیچید. چشمایش را باز کرد و بلند شد و نشست و به اطراف نگاه کرد. اسب سفیدی در دور دست ها میان درختان بید و سفیدار میتاخت. سواری بر پشت نداشت. وحشی بود و یالهای بلندش در باد به در ا از چهار نل می تاخت و شیه میکشید کشید. شبیه به ملا بود اما بی سوار و صاحب و افسار. آخرین بار سونا بر پشت آن سوار بود و به خانه بخت می رفت ولی حالا تنها میتاخت بدون سنا. از پشت تنه درختها و شیب تپه های پوشیده از چمن پنهان شد و صدایش را باد برد. به آسمان نگاه کرد. ظهر شده بود. دسته ی درناها با سر و صدا در ساحل دیگر دریاچه فرود آمدند و با پاهای بلند و لاغرشان جس و خیز کردند. روباهی با گوشهای افراشته و پوزه تیز از پشت بوتهها با حسرت نگاهشان می کرد. در ساحلی ایستاد و چشم به قزلاله دوخت که به صورت گروهی حرکت می کردند و با قلتیدن درون آب پوست صدفی و سفید زیر شکم و پولک های رنگین کمانی باله را به نمایش می گذاشتند. رنگهای قرمز، زرد و هنایی، هنایی، هنایی. وسط دریاچه، قاز ها و اردکها مثل قایق به اطراف حرکت می کردند. لاک پشت بزرگی آهسته به ساحل دریاچه نزدیک شد و آرام درون آب لغزید. در حالی که آنها را تماشا می کرد، را بالا زد و کفش و جورابش را درآورد و روی تخت سنگ صافی ایستاد آب را به قصد وضوع به صورتش زد. رو به قبل قامت بس و مشغول خواندن نماز مسافرش شد. پس از نماز باز همراه بنفشه در را در پیش گرفت. اما ناامید و بی آنقدر آن راه را رفته و برگشته بود که خط قدمهایش بر روی چمنزار مسیر را پررنگ رنگ کرده بود. این بار هم رفت، این بار هم برگشت، این بار هم چشم دواند. این بار هم جو کرد. سراغ گرفت از درختها از چمنها نیزار ولی همه ساکت بودند و سرشان سرگرم زندگی نباتی خود. با حسرت زر تکان می میدادند. بیشتر ساکت بودند تا اینکه خورشید به سراشیبی مغرب افتاد. ابرها گداخته شدند و غروب سایه تیره خود را روی درختها چمنزار و دریاچه پهن کرد. قله سبلان را از پشت شاخه ها دید. یک دست سفید بود، بلند و دست نیافتنی. یاد پرواز افتاد و آه کشید. نه یک بار، چند بار قله بلند بود و پرتو نارنجی خورشید بر زیبایی و افزوده بود احساس کرد با غروب خورشید دیگر سبلان را نخواهد دید آخرین نگاهش را به آن انداخت و آهسته لب جنباند ناگهان غروب شد برخلاف طلوع که کلی مقدمات و آداب و رسوم دارد غروب یک دفعه میآید قافل گیر می میکند زود شب میشود حالا هم داشت شب میشد دسته های بزرگ کلاخ های سیاه از صحرا به باغها برمیگشتند و سر و صدایشان میان درختها میپیچید دلش فشرده شد در غروب خودش را غریب احساس میکرد جایی که آن همه دوستش داشت حالا برایش بیگانه شده بود بیگانه میشد چقدر آنجا را دوست داشت و حال با نزدیک شدن شب چه شتابی برای رفتن از آنجا داشت باید ریشه های خود را از آن چمنزار و بیشه بید و سپیدار میکند و شبانه میگریخت. آخرین نگاه را به دریاچه و نیزار و چمنزار انداخت و راه جاده را در پیش گرفت. قورباغه ها هم نوای شبانه خود را شروع کرده بودند و صدایشان تا دور دست ها میرفت. آنقدر دور شد که دیگر صدای قورباغه ها را نشنید. ناگهان پیش روی خود شبهی را دید که با شتاب در سیاهی شب شد. حس ناگواری به او دست داد. سرما درونش را لرزاند و پوستش را گزید. به نظرش آمد یک جفت چشم در میان تاریکی او را تماشا می کند. بوی خوف و بوی گرگ در فضا پرکنده شده بود. با این بو آشنا بود. آن را می شناخت. رفت. به جاده نزدیک می شود. نور چراغ ماشین ها را میدید و صدایشان را می شنید. برای رسیدن به جاده باید از شیب تند بالا می رفت. آنجا پر بود از بوته های بلند بابا آدم و گوان های گسترده بر سطح خاک. از لابلای آنها خودش را بالا کشید. نفس نفس زنان به شانه خاکی جاده رسید. ماشین هایی که از شهر می آمدند و از مقابلش می گذشتند. مدتی بعد درون در ری فرو می رفتند و خیلی طول می تا از آن سو در آمدند و به صورت مارپیچ شیب تند کوه را کنان بالا می رفتند و صدایشان در اطراف می پیچید. هرچه دستش را تکان می داد، نمی نمی‌ایستادند. با همان سرعت از کنارش می‌گذشتند و بادشان او را هم در هم میپیچید و صدایشان در گوشش زنگ می‌زد و بوی بنزین و گازوئیلشان سینهاش را می‌سوزاند. موقع دور شدن، نور قرمز رنگ چراغ عقبشان به صورت آزاردهندهی چشمش را می‌زد. نمی‌خواست نگاهشان کند. چرا او را نمی‌دیدند؟ او بود. روی شانه خاکی جاده ایستاده بود. حتی یک قدم روی آسفالت هم میآمد، دست تکان می داد. یک دست گاهی هم هر دو دست، نور چراغ ماشین ها رویش می افتاد، سایش را روی آسفالت و زمین خاکی می و کش میداد و پهن میکرد. اما راننده ها انگار او را نمیدیدند. نمی دیدند، سواری، کامیون، اتوبوس، همه عبور میکردند. حتی یکی هم نگه نمی داشت، دلش گرفت از این همه سعین به طرف برفش در نگاه کرد ده پشت تپه ها مانده بود و در تاریکی نشانی از آن نبود احساس تنهایی کرد توی آن همه ماشین فقط برای او جا نبود یا او جای دیگران را تنگ می کرد دیگر نیستاد و برای هیچ ماشینی دست بلند نکرد سرش را پایین انداخت و مشتهایش را گره کرد و در شانه خاکی جاده به سوی درلو رو گردن راه افتاد نگاهش رو به جلو بود به پشت بر نمیگشت تند راه میرفت. میخواست خودش را به جایی برساند اما نمیدانست کجا جاده کنار دره رسید و ناگهان پایین لغزید عمق دره رودخانه ای بود که جاده از روی پل آن می‌گذشت و از آنجا سربالایی گردنه شروع میشد. شلنگ انداز شیب تند جاده را پیش گرفت سینه دره را خراش داده بودند و جاده درست کرده بودند ماشینها با احتیاط پایین می آمدند با سرعت کم، با این حال نگاهشان نمی کرد. شانه به شانه ی دیواره ی راه می رفت. تند شده بود. حالتی شبیه به دویدن و ندویدن. طول کشید تا رسید به ته در رو کنار پلی که از زیرش رود می گذشت. خسته شده بود. برای سربالایی گردنه نفس کم داشت. اطراف پل پرسه زد تا استراحت کرده باشد. بادی که از عمق دره میگذشت می سوز برف کوها را با خود می آورد. سرما بیشتر از خستگی آزارش میداد. به آن سر پل رفت. به اطراف نگاه کرد. لاستیک بزرگی کنار پل روی زمین رها شده بود. نزدیک رفت. لاستیک چرخ کامیون بود که آجهای آن صاف شده بود. با پا چند ضربه به آن زد سنگین بود و تکان نمیخورد. چند بار در اطراف آن گشت و نگاهش کرد. به نظرش آمد اگر لاستیک را آتش بزند چند ساعت می تواند خودش را گرم نگه دارد. قوتی کبریت توی جیبش بود آنا داده بود و گفته بود مرد باید مونه آتیش همراهش باشه آتش همراهش بود اما به پوست کلفت لاستیک کارگر نبود چند چوب کبریت را هدر داد و دور انداخت به فکر رفت و راهش را یافت بوته های خشک گون و بابا آدم شروع به جمعوری آنها کرد آورد و ریخ توی حلقه گشاد لاستیک و آتش زد اول ساقه و تیخ های خشک شوله شدند بعد آتش از پوسته لاستیک گذشت آن را مشتعل کرد. کمی بعد زبانه بلند آتش قد کشید و اطراف را روشن کرد. گرمایش زیاد بود. می سوزند. دورتر ایستاد و تن به گرمای آتش داد. و به دودی که چند متر بالاتر در هوا پخش میشد نگاه کرد. پل و اطرافش کاملا روشن شده بود. رانندهها موقع رد شدن از روی پل باید سرعت ماشین را زیاد می کردند و با استفاده از آن شتاب مسافتی را در سربالایی گردن پیش میرفتند. با این حال نمی به آن شعله سرکش نگاه نکنند. اما او توجهی به آنها نداشت. گرمای آتش لذت بخش بود و نور آن امنیت برایش فراهم کرده بود. دیگر خطر گرگ را در آن نزدیکی احساس نمیکرد. این آتش تمام شب می توانست باشد. کامیونی با سرعت کم شیب در را طی کرد و آمد و ابتدای سربالایی گردنه در شانهٔ خاکی جاده ایستاد در سمت راننده باز شد و یک نفر پایین آمد طول پل را طی کرد و خود را به او رساند اسماعیل طور که نشسته بود از زیر چشم نگاهش کرد دست خالی بود وقتی نزدیک شد گفت سلام عجب آتیشی تمام درر رو روشن کردی جواب سلامش را داد راننده بیشتر نزدیک شد و دستهایش را طرف های آتش گرفت و پلکهایش را بر هم فشرد. شب هیچ چیز مثل آتش نمی‌چسد. بفرمایین نوشه جان. ماشین چپ کردی؟ نه. اینجا زیاد ماشین چپ میشه. بیشتر کامیون و تریلی از اون بالا که میخوام بیان شیب تون میشه و جاده گلوشوتوری. زود ترمز می‌برن و ماشین از دستشون در میره و چپ میشه. بعضی شوفورها شانس میارن و سالم میمونن. اون وقت مثل تو شب آتیش روشن می کنن و میشینن و موازه مواظب ماشین و بارشون میشن. نه من چیزی چپ نکردم. پس برای چی اینجا نشستی آتیش روشن کردی؟ هیچی، داشتم از اون طرف میومدم، میخواستم برم این طرف، اما راننده ها سوارم نکردن، اومدم اینجا چپ کردم. دیدم اگه آتیش روشن کنم، هم گرمم میشه و هم بالاخره یه با منو منو میبینه. راننده خندید. بهترین کارو کردی. حالا این طرف تا کجا میخوای تا هر جا که شد، فقط این طرف باشه، اون طرف نباشه. آخه این طرف خیلیه، تا کجای این طرف میخوای بری؟ تا تهران. از تهران اون طرف تر چطور؟ نمیری؟ نه، گفتم که اون طرف نمیرم، فقط این طرف. راننده باز هم خندید. خیلی خوب بلند شو، منم دارم میرم این طرف. اسمایل نگاهش کرد. سایه روشن آتش روی خطوط چهره ی هر دو بازی میکرد. باور نمی‌کنم یه راننده‌ای با معرفت پیدا بشه و منو ببره این طرف. راننده‌ای با معرفت کم نیست، سواشو تا برات تعریف کنم. آتش را به حال خود گذاشت و پشت سر راننده به طرف کامیون رفت. از رکاب سمت شاگرد خودش را بالا کشید و نشست. راننده کامیون را به سطح آسفالت راند، اما شیب تند بود و ماشین به زحمت پیش می‌رفت. راننده حواسش به سرعت کند کامیون بود. اسماعیل گفت: به زحمت افتادین هم ماشین هم خودتون. راننده نگاهش کرد و خندید. چند پیچ را که رد کردند، ماشین کمی نفس گرفت. راننده گفت: قسم دفاع از راننده ها نیست، اما مدتی که جاده ها ناهم شدند. مخصوصا تو این گردنها اونم تو شب، نمیشه به کسی اعتماد کرد. چطور مگه؟ همینطور کنار جاده وای میستن و دست بلند میکنن. راننده رانندهی بدبختم دلش میسوزه و سوار میکنه. اون وقت فردا صبح جنازش رو پیدا می کنن. آش و آشولاش گرگا چیزی ازش باقی نمیذارن. عجب دزد سر گردن خیلی شنیده بودم اما گرگ سر رو حالا میشنوم یه همچین اوزایی شده برای همین سوارت نکردن حالا چیزی هم میبرند پولی طلا جواهراتی نه نشنیدم فقط میکشند همین ای بابا پس حسابی راه رو ناام کردن اون وقت دودش به چشم مسافرهایی مثل تو میره که باید تو این سرمایه شب پیاده بمونن. کامیون می نالید و راننده تند و تند دنده عوض می کرد. گوشش به ناله ماشین بود. سنگ ها و وحشی آهسته از کنار کامیون می و به پشت میرفتند گفت قدیما اینجا راه کاروان رو بوده همون آسفالت کردن شده ماشین رو. خندید. با علاقه بیشتری به اطراف چشم دوخت. راننده پرسید اهل نوار این تو چیزا هستی یا نه؟ نوار؟ من هستم صاحب خونه ای من حرفی ندارم بزار. راننده از میان نوارها یکی را برداشته توی زبد گذاشته صدایش را بالا برد صداها خشدار بود اما کمی بعد صاف شد مردی مدداهی می کرد با صدایی رسا و حماسی و دیگران سینه می زدند و می گریستند از رشادت و مرام حضرت عباس می خاند. احساس کرد این صدا را جایی شنیده یاد مشکین شهر افتاد آن مجلس ختم و راننده ای کامیون که پشت بلندگو رفت و همین را مددایی کرد در اون اتاق که کامیون چشم دواند چقدر آشنا بود از زیر چشم راننده را پایید داشت با مددا همخانی میکرد با همان ابروهای پرپشت و گونه های برجسته و بینی پهن دو دل ماند چند بار براندازش کرد و طاقت نیاورد و پرسید میبخشین شما خیلی شبیه یه نفر هستین راننده برگشت و نگاهش کرد. حلقه اشک دور چشمهایش برق میزد صدای ضبط را کم کرده با تعجب پرسید من چطور باید بدونم شبیه کی هستم؟ جاده مشکین شهر، برف، گرگا، شما راننده خندید دندان تلایش درخشید من همش تو این جاده هم یه وقتی مثل تو مسافرم سوار میکنم اما آخه اون شب گرگا شما رو بردن من اونجا بودم عجب احتمالا کسی دیگه بوده یه راننده شبیه من ولی به نظرم ماشینم عوض نشده خودشه همون ماشین و شروع به وارسی اجزای اتاقه کرد راننده با صدای بلندی خندید چه فرقی میکنه حالا فکر کن من همون راننده هم و ماشینم همون ماشین چیزی عوض میشه؟ گرگا جلوی چشم من شما رو بردن حالا چه فرقی میکنه راننده نگاهش کرد و خندید. هم چشمهایش برق زد و هم دندانهای تلایش. این حرفا رو ول کن حالا. بیا روزای آقام اول رو گوش بدیم. فکرتو زیاد مشغول نکن. هرچی هست دست همیناست ما خبر نداریم. صدای زبط را زیاد کرد. اسمایل دیگر حرف نزد و به مدده سپرد. راننده چشم به جلو دوخت و باز هم همخانی کرد. به صورت مارپیچ از سینه ی بالا میرفت. کم کم لکه های برف پیدا شد و سوز سرما پیچید در اتاقه که ماشین. اما راننده گرم مداحی بود. هر جا که به اسم اول فضل می رسید با صدایی هزین و رسا آن را می گفت. رفته رفته برف زیاد می شد و فقط سنگ های بزرگ و بوته های بلند بیرون مانده بودند. بقیه زمین پوشیده از برف بود. از درز درهای ماشین و جرز شیشه ها سوز می خزید به درون. فقط صدای توی میپیچید. اسماعیل دلشوره داشت، به هم ریخته بود، ترس و سرما زیر پوستش خزیده بودند و از درون او را می لرزندند. احساس می کرد اتفاقی خواهد افتاد، با دله را از شیشه به جلو چشم دوخته بود و دنبال سایه گرگ می وجودش را در آن نزدیکی احساس می کرد. اما لب بسته بود و حرفی نمی زد. راننده در حال خودش بود، می گفت و عشق می ریخت. زمین یک دست سفید بود، به قله کوه نزدیک شده بودند. کامیون به طرز دلخراشی مینالید و آهسته آهسته بالا می رفت ناگهان نور ماشین به یک امارت سنگی افتاد که روی قله بود و جاده از مقابل آن می‌گذشت. اسماعیل گفت: اونجا رو کاروانسرای شاه عباسیه. بعد از این جاده میوفته تو سرازیری راحت. ماشین به نزدیکی کاروان رسید و سرعت گرفت. به کاروانسرای سنگی مستحکم چشم دوخته بود که مردی از پشتان بیرون آمد و با چند گام بلند خودش را به وسط جاده رساند و دست بلند کرد. راننده با تعجب گفت ای بابا حالا چرا وسط جاده کنار وایسه دیگه؟ اسمایل به مسافر خیره شده بود. از درون میلرزید. چانه و انگشت پاهایش یخ زده بود. ترس مچالهش می کرد. چشمای مرد مسافر زیر نور چراغ کامیون برق سرد و سهمگینی داشت. ته دلش رو خالی می کرد. لباس نظامی تنش بود. راننده با صدای بلند گفت با زمینا ستاره ها روی دوشش می درخشید. با پاهایی گشاد وسط جاده ای بود. راننده خواست ماشین را از کنارش رد کند اما جاده باریک بود و سپر ماشین گرفت به او و پرت شد کنار جاده. راننده با نفرت گفت به جهنم مسافتی جلوتر ماشین را به زحمت نگهداشت داشت و دست به دستگیره دروردان را باز کرد. اسماعیل پرسید: کجا؟ ببینم چی شد. پیاده نشو ولش کن. اون دفعه که دیدی. راننده نگاه پرسش آمیزی کرد و پرید پایین. اسمایل هم از سمت دیگر پایین آمد و خودش را به او رساند. برف زده زیر پاهایشان می شکست و صدا میداد. راننده چراق قوه را روشن کرد و زیر نور آن رد خون را گرفتند و به حاشیه جاده رسیدند. آنجا افتاده بود. نزدیک که شدند، به جای افسر گرگی را دیدند که شکمش پاره شده بود و هنوز خون از آن فوران می کرد. چشمهای گرد بسته بود و از خونش بخار بلند می شد. راننده گفت، ما که با یه افسر آمریکایی تصادف کردیم، این گرگی از کجا پیدا شد؟ اسمایل به آن سوی طل برفهایی که کنار جاده جمع کرده بودند نگاه کرد. دهها ها جفت چشم در آن نزدیکی برق می زدند. دست راننده را گرفت و عقب کشید بیا بریم بازم گرگا راننده نور چراقوه را به طرفشان انداخت گرگ ها به صفی ایستاده بودند و نگاهشان می آن دو عقب عقب رفتند و خودشان را به کامیون رساندند با شتاب سوار شدند و راننده ماشین را توی دنده گذاشت و حرکت داد جاده در سرازیری بود کامیون زود سرعت گرفت از روبرو ماشین ها به سختی بالا می کشیدند هنوز هنوز بود. راننده فلاسکی چای همراه دو لیوان به او داد. خودت زحمتشو بکش. اسماعیل مشغول ریختن چای شد. راننده آه کشید و زیر لب گفت. یا اول